از همه دسان در کاران از وزارت بهداشت و دیگران که دسان در کار تولید واکسن بودن تشکر می کنم. نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم الانم به عموم عمومی میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی اومه. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت چه چه چهار هزار نفر تلفات داشتن اینها اینا اگر واکسن بلدن درست کنن اگر کارخونه فایزرشون میتوانه واکسن درست کنه چرا به ما میخون بدن خودشون مصرف کنن انقدر مرد و کشته زیاد نداشته باشن انگلیس هم همینجور به اینا بنابراین اعتمادم نیست من واقعا اعتمادم ندارم نمیدونم و از اوقات هست اینا میخوان باکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکن بنابراین از آمریکا از انگلیس ابتده به فرانسه هم من خوشبین نیست علتشم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بعد بله از جاهای دیگه میخوان باکسن تیعه کنم جای مطمئنی باشه هیچ اشکالی نداره این هم نکته دوم نکته سپوم در باب کرونا این که مراقبت های مردمی باید ادامه پیدا کنه حالا یه خورده ی تلفات کم شد البته زیاده 100 نفر در شبانه روز صد چند نفر چیزی کمی نیست خیلی زیاده اما حالا یه مقداری نسبت به قبل کمتر شده مردم خیال نکنن که دیگه حالا مسئله حل شد و تمام شد و ننخیر مراقبت ها رو ادامه بدن مسئولین کشور هم که در زمینه این کار مسئولیت دارن وضایبشون رو دنبال کنن و نکته چهارم در باب و کرونا این که بعضی از افراد تجربه های خوبی در این زمینه انجام دادن دارویی درست کردن این دارو رو یه جایی امتحان کردند، زیر نظر مسئولین و تصدیق شده تحیید شده که این دارو معثره با اینا مخالفت نشه این کارهایی که اطراف و اکناف کسان زیادی هستند که ممکنه یه کار جدیدی بکنن نه اینکه که حالا هر ادعایی رو قبول کنن نه اما همون کارهایی رو که ادعا میشه اینا رو مورد مداقع قرار بدن